نوار شماره 537 آ اثری نوارهای غیر درسی کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی ناشر انتشارات ساحل چاپ مرداد ماه 1348 چاپ و صحافی چاپخانه فیروز ضبط آزاد تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ ماه 1373 گوینده فیروزه قفوری پور کننده مریم اوجانی با بررسی خورگنه قدیمی کارمینا شاهکار تولستوی ترجمه محمدعلی شیرازی داستان تولستوی معلف این داستان جانسوز و دلگوداز یکی از نویسندگان معروف و برجسته تاریخ انسانی به شمار می‌رود. او به جایی اینکه وقت به عرف و عادات طبقه اشرافی که از آن به شمار میرفت بگذارد و از آنها دفاع کند با میل و رقبت، مدافع طبقه فقیر و زحمتکش گردیده و فجایع طبقه اعیان و اشراف را در نوشته های عالی و شاهکارهای جاویدان خود باقی گذاشت. حس ترحم به فقره و زحمتکشان سبب شد که فراموش نماید او از طبقه اعیان و اشراف است. تولستوی در سال 1828 در شهل یا پولیانا پا به عرصه وجود گذارد و هنوز بیش از دو سال نداشت که مادرش درگذشت و در نه سالگی برای همیشه از مهر پدری محروم شد تولستوی امهٔ مهربانی به نام تانیانا داشت که حاضر شد او و دو برادر و دو خواهر یتیمش را تحت تکفول خویش قرار دهد و بزرگ کنند تاتیانا زن خوش قلب و مهربان و ساده بود و به قدری ساده لوح و خوش باور بود که به اوهام و خرافات عقیده داشت و گفته یه بازان و جادوگران و دعانویسان را باور می‌کرد و آنها را محترم و گرامی می‌داشت از این رو تولستوی تحت تاثیر داستان‌های خرافاتی که امناش برای او تعریف میکرد قرار گرفت و آن افسانه ها همچنان در ذهنش باقی بود تا اینکه بزرگ شد و جوان گردید و چندین داستان کودکان برشته تحریر در آورد. تولستوی در مدرسه شاگرد تنبلی به شمار میرفت ولی از کوچکی این امتیاز را بر اقران و همگنان خود پیدا کرده که آرا و نظریات جدیدی درباره زندگانی اظهار می کرد تولستوی در سن پنج سالگی درباره زندگی چونین اظهار نظر می نماید زندگی لذت و خوشی نیست بلکه بار بسیار سنگینی می باشد تولستوی در سن شانده سالگی ایمانش نسبت به کلیسای ارتودکس که هم میهنانش آن عقیده داشتند سست و گردید، و پس از آن دوره بر توستوی گذشت که آن دوره را به گونه توصیف نمود. گردش های فلسفی در صحراهای جوانی و در سن نوزده سالگی به طوری شک و تردید به وی دست داد که از همه چیز معیوس و ناامید گردید. و شاید علت عمده یعص و نامیدی و بدبختی او در این مرحله از عمر یعنی بهبهه جوانی قبه و زشتی خلقتش بود او چشمان کوچک و فرو رفته پیشانی کوتاه و لبان کلفت و بینی پهن و گوشت بزرگ داشت ولی عقل فیلسوف ها را دارا بود او به قدری از چهره زشت و بدترکیب به خود آجز بود و بعدش میآمد که تصمیم گرفت انتهار کند ولی از خوششانسی عالم انسانیت تولستوی از این تصمیم عدول نمود. در یکی از روزها بعضی از معلفات شاعر معروف و فیلسوف بزرگ فرانسوی جنجک روسو به دست تولستوی افتاد. این معلفات چون داروی تقویت ای بود که او را برای زنده ماندن نیرومند ساخت و مایه تسلی خاطر او گردید و چشمانش را بر زیبایی های طبیعت گشود. و به قدری علاقه و شیفتگی تولستوی به روسو زیاد گردید که عکس او را در قاب کوچکی گذارده و برگردن افکند تا همیشه عکس وی را همراه داشته باشد. فلسفه روسو بود که به تولستوی الهام داد تا اولین داستان خود را به نام یک نفر ملاک روسی به ی تحریر در آورد و موضوع این داستان همان موضوعی بود که در مدت عمر تولستوی، فکر او را به خود مشغول داشت. یعنی موضوع نبرد همیشگی بین تقوا و معجزه پیامبران و تمسخر مردم سست ایمان به های ایشان. در سال 1851، تولستوی از دست طلبکاران به قفازی فرار کرده و در آنجا وارد ارتش شد و چون افسری مانند برادرش انجام وظیفه نمود، و در این مرحله از عمر خود ایمان و اعتقادش به زندگانی قوی شد و شک و تردید فلسفی را از خود دور کرده و در دریای عیش و نوش قوته ورگردید در این مرحله از عمر خود هم فعالیت کرده و هم قمار نمود هم عاشق شد و با داستانهای خود دنیای زیبایی را به وجود آورد کارهای ادبی او را از عمل ارتشی بازداشت و بیش از 24 سال نداشت که اولین فریاد خود را بر ضد جنگ و خون ریزی بلند کرده و از کتاب تعلیف نمود و در بر زمامداران کشورها که ملتهای خود را به سوی آتش جنگ می‌کشاند حملات سخت نمود و از آن تاریخ خود را آماده کرد که جنگ را با دوستان جنگ و خونریزی شروع کند و در پنجم مارس سال 1755 در یادداشت‌های خود چنین نوشت: من تصمیم گرفتم اقدام عظیم و بزرگی بنمایم و گمان می‌کنم شایستگی آن را هم داشته باشم و حاضرم تمام عمر خود را صرف آن نمایم و آن اقدام بزرگ و عظیم تأسیس دین جدیدی میباشد شالوده ی آن دین جدید عدم مقاومت، مساوات و برادری و صلح جهانی بود سال بعد یعنی سال 1856 تولستوی از خدمت در ارتش استعفا داد و به شهر پترزبورگ لنینگراد کنونی مراجعه کرد معروفیت جنگی و ادبی او به آن شهر رسیده بود اودبا و دانشمند پترزبورگ از او استقبال شایانی کردند ولی چیزی نگذشت که توزتوی پیبرد اختلاف زیادی بین آراء و عقاید او و آراء و عقاید ادباء و دانشمندان پترزبورگ وجود دارد زیرا آنها فقط برای یک طبقه بخصوصی مانند بسیاری از دانشمندان کشور ما چیز مینوشتند و ابدا عموم مردم را شریک دنیای عالی خود نمیکردند. زیرا آنها را شایسته این امر نمیدانستند. در حالی که تلستوی ادبیات را چشمه مقدس برای حکمت و جمال میدانست، و عقیده داشت که همه کس باید از آن سیراب گردد و از این رو تلستوی قلم به دست گرفت تا اکثر مردم را با سواد و فهمیده کند در شهر خود مدرسه‌ای برای کشاورزان افتتاح نمود ولی مامورین شهربانی مدرسه او را بستند و به او نصیحت کردند که کشاورزان را در جهل و نادانی خود باقی گذارد. پس از آن ماههای مرض و یس و ناامیدی فرا رسید. دو نفر از برادران تولستوی به مرض سل مردند و خود او هم کرد که به این مرض وحشت‌آور مبتلا شده است. از این رو ایمانش به خوبی و نیکی کم گردید و می توان گفت که ایمان خود را به همه چیز از دست داد. و برای بار دوم به فکر انتها افتاد و باز هم در این مرتبه از این فکر عدول کرد تا برای هنر خیش و عشقی که نسبت به دختر دلخواه خود سوفی اندریفنینا پیرز داشت زنده بماند. تولستوی در حالی که سوفی 17 سال داشت و و 4 ساله بود با وی ازدواج نمود و سعادت زندگی زناشویی آنها مدت پنجاه سال تمام طول کشید و همین سعادت زناشویی بود که به تولستوی الهام داد داستان آنا کارنینا را چکنون تقدیم خوانندگان ارجمند می‌نماییم درشته تحریر در آورد از نسایه تولستوی این است که نباید دشمن انسان بود و تسلیم خشم و قذب گردید و به زور و قوت توسل جست. و پس از آن حملات خود را علیه ورخرجی های بیجا و شهورترانی های نمگین اعیان و اشراف و تعصب ریاکارانی رجال دین و استبداد و ظلم سلاطین شروع نمود و حاضر شد در این راه جان و معروفیت و موقعیت و ثروت خود را از دست بدهد بدین گونه تولستوی حاضر شد از طبقه ای که خود او هم جزء آن بود بدگویی کند و مدافع طبقه فقیر و زحمتکش شود و به این هم اکتفا نکرد جامعه ساده کشاورزان را برتن نموده از این رو افراد خانوادش او را دیوانه و مجنون تصور کردند و از او دوری جستند تولستوی از دست زن بداخلاق و ناسازگار خیش از خانه و شهر خود فرار کرد و سر به بیابان گذارد و از شهری به شهر دیگر میرفت و متحمل انواع زحمت و مشقت گردید و سرانجام ناخوش و بستری گردید و ده روز پس از فرار خود یعنی در روز یازدهم نوامبر سال 1910 در سن 82 دو سالگی دیده از جهان بس و کتاب های, های از خود برای بشر باقی گذاشت. خانواده‌های خوشبخت شبیه یکدیگر میباشند ولی برعکس خانواده‌های بدبخت جز به خود به خانواده دیگر شباهت ندارند به خانواده‌ی ابلونفکی بدبختی غیر ای روی داد و آن خانواده را سخت متوّهش ساخت که در نتیجه دوستی و محبت در میان افراد آن خانواده به کینه و دشمنی مبدل گردید سبب این پیش آمد آگاهی زوجه ایبلوفکی از وجود رابطه نامشروع بین شوهر او و پرستار فرانسوی بود که چند روز پیش او را از خانه بیرون کردند و مشاوران الیها اظهار داشت که ادامه زندگی با یک چونین شوهر خیانتکاری میسر نیست سه روز از این مقدمه گذشت مستخدمین خانه تکلیف خود را نمی دانستند زیرا سه روز تمام خانم خانه در اتاق مانده و آن را ترک نگفت شوهر هم روزها را در خارج از خانه به سر می برد و اطفال از هر گونه پرستاری و مواظبت محروم ماندند پرستار با پیشخدمت باشی یک و دو کرده نامهای برای دوست خود نوشت و از وی خواست که کار دیگری برای او پیدا کند اما آشپز یک روز پیش خانه را ترک گفته دیگر مراجعت نکرد و که چی نیست تهدید کرد که خیال دارد دست از کار بکشد صبح روز سوم شوهر از خواب بیدار شده خمیازهی کشید و رویای شیرینی را در خواب دیده بود که به خاطر آورده و بر لبانش نقش بست آنگاه به یاد آورد که شب گذشته بر روی یکی از نیمکتها خوابیده و در رخت خواب همسرش نخوابیده است که بر لبانش بود بر طرف شده و زیر لب گفت آه پروردگارا سپس خیانت خود را نسبت به همسر خیش و همچنین دعوایی که بین آنها در گرفته بود به خاطر آورده گفت نه نه او گناه مرا نخواهد بخشید آه خداوندا چرا نامه شون به دست زوج افتاد خب چرا وقتی زوجم آن نامه را به من نشان داد من به جای اینکه پوزش بخواهم تبسمی از روی غرور و تکبر نمودم و او را وادار کردم تا آنچه دلش میخواهد بدگویی کند و دیگر حاضر نشود با من روبرو گردد ای ابلونسکی ساکت مانده باز پیش خود گفت آه تمام این بلایا به واسطه ی آن تبسم بیجایی بود که بر سر من وارد آمد علی‌اکدون چه کار میتوانم بکنم لهظاتی بیاندیشید ولی راه حلی پیدا نکرد فصل دوم ابلاسکی سی و چهار سال داشت از زوجش دارای هفت طفل شده بود که دو تایی از آنها مرده بودند او اگر میدانست که زوجش به تلا از خیانت او تا این درجه خشمناک و محصون میشود جلوی بلهوستی و غرور خود را میگرفت راستی چرا زوجش که بر اثر زاییدن هفت طفل زیبایی و دلربایی خود را از دست داده است از وی که یک جوان سی و چهار ساله و با نشاتیست دست از پا خطا نکند و چون مردان سالخورده به زن و اطفال خود بچسبد، ابلانسکی لحظه ای ساکت مانده دو مرتبه با خود چون این درده دل کرد. راستی خیلی مخوف است. ما پیش از این چقدر خوشبخت بودیم زندگانی همسرم داریا با اطفال و مستخدمین خود به خوبی خوشی میگذشت تا اینکه چنان افتضاحی بار آمد راستی چقدر پستی تبع و کتح فکری میخواهد که مردی با پرستار اطفال خود رابطه پیدا کند ناگاه مد مدموازل رولان پرستار اطفال در نظرش مجسم شده تبسم شیرین و نگاه های دلفری به او را به خاطر آورد و آهی کشید و فریاد بر آورد اکنون چه باید بکنم؟ آنگاه در جای خود نشست و زنگ را نباخت گماشته سالخوردهاش سال خودش ماتیو در حالی که لباس های آقای خود را با تلگرافی که در دست داشت وارد شد ابلوزکی تلگراف را گرفته خواند و چهرهش باز شد و گفت ماتیو؟ سرد خواهرم آنا کارنینا خواهد آمد. ماتیو گفت: آقا خدا را شکر، شاید او شما و خانمتان را آشتی بدهد. خوب، آقا، آیا خانوم آنا کارنینا با شوهرشان آن میآیند؟ جواب داد: نه، تنها میآید. پیشخدمت گفت: آیا به نظر شما بهتر آن نیست که یکی از اتاقهای اشکوبه دوم را برای ایشان خالی کنی؟ مرد گفت: ماتیو این تلگراف را برای خانم ببر و ببین نظر ایشان در این باره چیست. ماتیو متعجبانه آقای خود را نگریسته چیزی نگفت و تلگراف را گرفته به سوی اتاق خانم شتافت. ابلونسکی مشغول پوشیدن لباس خود شد. چیزی نگذشت که ماتیو در حالی که تلگراف را در دست داشت برگشت و گفت: خانم گفتند که ایشان همین اکنون از خانه خارج خواهند شد و شما هر کاری که میخواهید بکنید. ابلانفکی زیر لب گفت خب ماتیو بگو ببینم چه باید کرد ماتیو گفت آقا این همه نگران نباشی هر مشکل سختی خود به خود حل می شود در این موقع ماترینیا خدمتکار اطفال وارد شد و گفت آقا حال خانم خوب نیست به خاطر بچه ها هم که شده با خانم آشتی کنید مرد گفت ولی آخر رو به من اجازه ورود به اتاق خود نمی دهد دختر گفت آقا شما به وظیفه خود قیام کنید خدا هم شما را موفق خواهد نمود مرد گفت بسیار خوب برو من خواهم آمد ابلووسکی لباس خود را پوشیده به اتاق غذاخوری رفته مشغول صرف ناشتایی و خواندن روزنامه گردید او مشترک یکی از روزنامه های آزادی خواه بود ولی وی عقیده خاصی به علوم و فنون سیاست نداشت بلکه هر روز عقیده جدیدی پیدا میکرد او تمایل به آزادی خواهان داشت حزب آزادیخواهان میگفت که همه چیز در روسیه زنگ زده و پوسیده شده است ابلونسکی به این گفته ایمان آورد زیرا وی در زیر بار دین دست و پا میزد آزادی خواهان گفته بود که قوانین ازدواج محتاج اصلاح است ابلونسکی موافق با این رأی بود زیرا زندگانی زناشویی او سرچشمه اندوه و نگرانی و بدبختی شمار می‌رفت. حزب آزادی خواهان بر مردان دین حمله می‌کرد. ابلوسکی از این حملات اظهار خوشنودی مینمود. زیرا وی فایدهای در این امر نمی‌دید که چند ساعت بر سر پای بییستد و به موعظه درباره آخرت گوش دهد، در حالی که می‌توانست این چند ساعت را به ایش و نوش مشغول شود. فصل سوم ابلوزکی همین که از خواندن روزنامه فراغت حاصل کرد، کلاه سر نهاد که برود، ولی کم لحظه ای مکت کرده، فکر نمود تا چیزی را فراموش نکرده باشد. او به سرافت همان چیزی افتاد که میبایستی فراموش کند و آن هم زوجش بود. لحظه ای مردد ماند که آیا به دیدن همسر خود برود یا نه. چه فایده ای از اصلاح آشتی خواهد بود هیچ نمی نمیتواند زوجش را باز جوان و دلفریب سازد و یا او را مرد سال خورده و ناتوانی بنماید در این لحظه صدای اطفال را که در باغچه مشغول بازی بودند شنید و پیش خود گفت برای خاطر این بچه ها هم که شده باید با همسرم آشتی کنم پس از ادای این کلمات سیگاری آتش زده به سوی اتاق زوجه خیش شتافت. فصل چهار همه چیز در اتاق ریخته و پاشیده بود و از اش داریا لباسها را تا کرد داریا در این سه روزه چندین بار تصمیم گرفته بود که دست بچه ها را گرفته به خانه مادر خود برود و برای همیشه از شوهر جدا گردد ولی متوجه بود که این کار کار آسانی نیست زیرا میدید که وی عادت کرده است که ابلونسکی را شوهر خود بداند و او را دوست بدارد به علاوه مواظبت از پنج تلف در خانه مادرش کار سهل و آسانی نیست این مذهب هم باز خود را گول زده هر چیزی را جمع می‌کرد و لباسهای خود را تامین مود مثل اینکه به خیال دارد برود داریا وقتی شوهر خود را دید دست در چمدان فرو برد و چنین وانمود کرد که دنبال چیزی میگردد و سر به سوی شوهرش برنگرداند مگر وقتی که شوهرش در کنارش ایستاد. داریا مایل بود خود را خشمناک و بی به شوهر نشان دهد ولی نتوانست بر عواطف خود چیره آید و در نتیجه قیافه اندوهناکی پیدا کرد. ابلونسکی با صدای آهسته گفت داریا. آنگاه برای اینکه اظهار پشیمانی و ندامت کرده باشد با فروتنی و ناامیدی سر به کرد. ولی نشاط جوانی و چهره شاداب و بوی خوشی که از سر لباس او بر همه حکایت از تظاهر و ریاکاری او می‌نمود. داریا سرسا او را برانداز کرده و از نشاط شادابی او که محبت ابلانفکی را در قلوب آشنایانش بیشتر میکرد اظهار نفرت می و با صدای عمیقی گفت چه میخواهی خواهی؟ با لکنت زبان گفت داریا؟ داریا، فردا خواهرم آنه خواهد آمد. خب، من چه بکنم؟ من نمی از او پذیرایی نمایم. داریا، در هر حال ادب و انسانیت به دور است که تو از وی پذیرایی نکنی داریا با دلی درد من فریاد براورد. دور شو، من نمی تو را ببینم. ابلوسی از اینکه همسر خود را تا آن درجه محضون و دردناک دید، کمی احساس ندامت کرد بعد دو قطع اشک در چشمانش حلقه زد و گفت آه پروردگارا داریا مگر من چه کردم تو میدانی که آنگاه متأثر شده و نتباند جمله خود را به پایان برساند داریا با شدت در قفسه را بست و به او نگاه کرد ابلونسکی زیر لب گفت داریا من چه بگویم جز معذرت خواهی چه میتوانم بکنم ما نه سال تمام با هم به خوشید گذراندیم و زن شوهر خوشبختی بودیم. آیا پس از نه سال آمیزش نباید عذره برابر پذیری؟ داریا سر به زیرف و منتظر استاد. گویی مایل است کلمه از ابلانسکی بشنود تا یقین حاصل کند که او اشتباه کرده و ابلونسکی بیگناه میباشد. ابلونسکی ابلانسکی, می ابلانسکی خود را با این کلمات خط کرد. آیا این مدت دور و دراز نمی یک لحظه دیوانگی مرا شفاعت کند؟ داریا مانند دردمندی که بخواهد درد خود را نگفته باشد لبانش را به دندان گرفت و گفت دور شو از اینجا بیرون برو هرگز نمی خواهم کلمه ای از لحظات دیوانگی و بلحوثی بشنوم داریا پس از ادای این کلمات بی بر روی نینکت افتد ابلونسکی آهی کشید و در حالی که قطرات اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت داریا رحمی به حال بچه ها بکن این بیچارگان چه گناهی دارد تو هر کاری میخواهی با من بکن من مستحق مجازات هستم بگو ببینم من چه کاری باید بکنم و چگونه ممکن است گناه خود را جبران نمایم داریا که از شدت خشم نفس نفس میزد ابتدا نتوانست چیزی بگوید ولی بعدا گفت تو هم کسی هستی که فقط وقتی میخواهی سرگرمی پیدا کنی به فکر بچهها مییفتی و با آنها بازی میکنی ولی من همیشه به فکر آنها بوده و شما اکنون باید بدانی که آنها را از دست داده و بدبخت و بیچاره نمودی آنگاه نفر زنان ساکت مرد و پس از چند دقیقه باز گفت من که همیشه به فکر بچه ها هستم و مایلم آنها را نجات دهم اگرچه این برای من خیلی گران تمام شود ولی نمیدانم چگونه آنها را نجات دهم در تردیدم که آیا آنها را از آغوش پدرشان بیرون آورم یا در کنار این پدر طبخکار و بلحبست باقی گذارم آیا تو گمان می کنی که باز ممکن است بعد از این هم با یکدیگر زندگی کنیم آیا زندگی با شوهری که پدر پنج تفر بوده و با پرستار بدچهاشق بازی کند امکان پذیر است با صدای ضعیفی گفت خوب بگو ببینم چه باید کرد بگو ببینم داریا متاثر و خشمناک فریاد در آورد تو مرد بری هستی این عشکهای تو هم دروغی و مانند اشکهای هست آره تو هرگز مرا دوست نمیداری و معنی مهر و محبت و شفقت و شرافت را نمیداری من از تو بی اندازه بیزارم، و دیگر نمیخواهم هیچ کنه رابطه ای با تو داشته باشم داریا این کلمات دردناک را با نفرت ادانه بود ابلوکسکی از خشمتقیان داریا وحشت کرد و متوجه نشد که دلسوزی او همسرش را بیشتر خشمنات ساخته و داریا متوقع نبود از از شوهر خود دلستوزی ببیند بلکه انتظار محبت داشت املاسکی پیش خود گفت نه او از من بیزار است و برای نخواهد بخشید در لحظه زن و شوهر گرلی یکی از اطفال را در اتاق مجاور شنیدند دریا خوب گوش داد یک مرتبه چهرش باز شده فوری از جای برخواست و به سوی در اتاق را املافکی پیش خود گفت، او که بچه های مرا دوست می دارد، پس چگونه ممکن است از من نیزار باشد؟ آنگاه دنبال داریا براق افتاد، در حالی که با صدای بلند می گفت، داریا سب کن، من میخواهم یک کلمه دیگر با تو صحبت کنم. داریا فریاد زد، اگر دنبال من بیایی گماشتگاه و بچه ها رو فرا به آنها ثابت خواهم کرد که تو مرد پست و زبونی هستی. لحظه ای بعد من این خانه را ترک خواهم کرد تا تو بهتر بتوانی با مشوبهٔ خود به ایشون نوش بپردازی داریا آنگاه از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست